السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا بقية الله في عرضه السلام على المهدي الذي بعد الله عزا وجل أن يملأ به الأرض أدلاً وقصفاً شموا متذات ظلمًا بجوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه و نعود بالله من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا و نشهد و لا اله الا الله وحده لا شریکه لا و نسلی و نسلم على حبيبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير النعمته ونذير النقمته سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ال. خدات المهدیین و الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین عباد الله و نفسی بی الله قال مولانا و مقتدانا الامام الصادق عليه الصلاة و السلام الله و انظرو لانفستکم احق من نظر لها انتم بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم وجود مقدس امام صادق فرمود تقوا پیشه کنید موازه به خودتون باشید زیرا شما به تقوا و موازبه بر نفستون سزاوارترید در خطبه اول پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر سخن می گفتیم در بخش پایانی خطبه گذشته به این نکته اشاره کردیم که یکی از میارهای شناخت معروف و منکر این است که هر جا پای تقویت دین تقریت بنیانهای دینی مطرح شد اونجا از مصادیق بارز معروف است و هر جا پای تضعیف دین و بنیان های دینی مطرح شد آنجا از مصادیق منکر است امروز به نکته دیگری اشاره خواهم کرد و اون نکته و معیار دیگر عبارت از این است معیار برای شناخت معروف و منکر مسئله تقویت سلطه و نفی سلطه بیگانگان است هر جا پای نفی سلطه بیگانگان بیمیان بیاید اونجا مصلاق روشن معروف است و هر جا پای تقدیت سلطه بیگانگان به هر شک، به هر وسیله پیشاید اونجا مستاق بارز منکر است واقعیت مطلب این است که در مقابل هرچه در مسیر نفی سلطه قرار میگیرد ما باید همراهی کنیم و در مقابل آن که موجب سلطه بیگانگان به دیگران میشود و بیگانگان میگردد باید مقابله کنیم. جامعی جامعه مستقل است که اجازه نفوذ اجازه سلطه به بیگانگان ندهد جامعه وابسته جامعی است که راه را برای نفوذ دیگران برای سلطه دیگران باز بگذارد جامعی که در مسائل سیاسی در مسائل اقتصادی است در مسائل فرهنگیش در مسائل اجتماعیش نگاهی به بی بیگانه دارد این جامعه جامعه مستقل نیست ای که در مسائل گوناگونش روی پای خود ایستاده است به دشمن نه بزرگ میگوید به بی بیگانه نه بزرگ میگوید این جامعه جامعه وابسته نیست این جامعه جامعه تحت سلطه دیگران نیست اصل نفی سلطه از اصول اساسی اسلام عزیز ماست این اصل هم در بود اعتقادی ما نقش دارد هم در تولی و تبری ما این اصل اساسی نقش دارد قرآن تعبیر جالبی در رابطه با این اصل مطرح کند و اون تعبیر این است و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هرگز خدای متعال برای کافران و به نفع کافران این ضرر و زیان و راهی برای ضرر و زیان نسبت به مؤمنان باز نکرده است یعنی کفار نمیتوانند راهی علیه مؤمنان پیدا کنند کافران نمیتوانند سلطهی بر مؤمنان پیدا کنند سلطه هم عرض کردم تنها سلطه نظامی نیست تنها سلطه اقتصادی نیست در مسائل فرهنگی اگر رسوم و آداب یک جامعه تقلید از بیگانه شد پیداست این جامعه خود را آماده می کند کم کم برای سلطه پذیری از سوی بیگانگان قرآن در تعبیر دیگری می لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وَمَنْ يَفْعَلْ لَا فلیس فَلَيْسَ مِنَ فی فِي شئن. انسان انسانهای با ایمان نباید کافران را به جای مؤمنان چه سرپرست چه دوست خود قرار بدهند و اگر کسی چنین کاری انجام بدهد در هیچ چیزی از ولایت خداوند پیروی نکرده است خب موقعی که قرآن با این شدت به هدت مسئله سلط ناپذیری از بیگانگان دامت رحمی کند تکلیف جامعه ما روشن است بنابراین معروف منکر را در یک سری موارد عادی و معمولی جستجو نکنیم منکر بزرگ سلط پذیری است معروف بزرگ نفی سلطه و مقابله در مقابله بیگانگان است امروز اگر در دنیای اسلام در جهان اسلام بینید، دشمنان تمع میکنند میخواهند جای پایی برای خودشون در سرزمین های اسلامی پیدا کنند اینها پیامدهای اون نفوذ قذیری جامعه اسلامی سران بعضی از کشورهای اسلامی است چراغ سبز نشان دادن آنهاست که دشمنان تمع می کنند اگر مانند صدار رشید ما که ملاحظه فرمودید رئیس سازمان سیان نامه می نویسد نامه محرمانه می نویسد و قامتی استوار میگوید نه نامه را میپذیرم و نه اون را میخوانم نامه را برگردانید اگر سران کشورهای اسلامی این چنین عمل میکردند امروز ترامپ ها و نتانیاهو و دیگران و دیگران احساس نمیکردند که جای پایی در سرزمین های اسلامی دارند بنابراین مسادیقی که برای سلطه پذیری از دشمنان در یک جامعه می شود مطرح کرد من به عنوان نمونه اشاری می کنم یک بیتفاوتی تفاوتی در برابر توسعه طلبی دشمنان اسلام این نمونه از سلطه است یعنی این نمونه از منکر بزرگ نکته دوم ایجاد تفرقه و اختلاف بین امت اسلامی و در نتیجه زمینه برای وحرمندی دیگران از این تفرقه و اختلاف این منکر بزرگ است چرا معروف و منکر را ما در جای دیگر جستجو کنیم ایجاد زمینه برای نفوذ دشمنان از طریق سهلنگاری در حفظ و پاسداری از اطلاعات سیاسی و امنیتی کشورهای اسلامی و نقطه دیگر و در مقابل دشمن و تبلیغ و تمجید از دشمنان و نشان دادن این نکته که ما نمیتوانیم و هرچه هست توانمندی کارایی از بیگانگان و دشمنان است اگر کسی با چنین طرز تفکری زندگی کند عمل کند این انسان حل لحظه و هر آن زندگیش مرتکب منکر شده است اینها است که در یک جامعه اسلامی مطرح است پس بنابراین میخوایم میار نشان بدیم معروف کجاست؟ منکر کجاست یکی از مسادیق معروف نفی سلطه و یکی از مسادیق منکر عبارت است از سلطه پذیری آدمای سلطه پذیر که در همین آداب رسومشون در نامگذاری فرزندانشان اجتناب میکنن از های اسلامی نامهای دینی میگردن بررسی میکنن کدام نقطه دنیا چنین نامی وجود دارد در فلان کشور غربی و اروپایی چه نامی وجود دارد برای فرزندی که توی خانواده مسلمان بزرگ شده چنین نامی انتخاب میکنن این یعنی چیه؟ یعنی نفوذ تذیری از ناهی دشمن فرهنگ وارداتی را پذیرفتن و فرهنگ خودی را نت کردن اینها ویژگی است برای شناخت معروف و منکر الله و ان الله یامر بالعدل والاحسان و ايتاء الز قرب و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا عزكم لعلكم تذكرون پروردگار را در فرج مولایمان تعجیل فرما پروردگار را ما را در مسیر دینداری در مسیر پیروی از مکتب قرار بده به امام من روح و رزوان انایت فرمان و رحبر عزیز و فرزانه انقلاب من عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به مراجع بزرگان تقلیدمون عزت سلامت انایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدان من و عجر انایت بفرما به رزمندگان پیروزی به جانبازان سلامت و آزادگان عزت و عالمان توفیق عمل به بانوان افت به جوانان غیرت دینی انایت بفرما ترودگان ما را مشمول رحمت و برکاتت قرار بده باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردن این احسن الحدیث و ابلغ الموزه کتاب الله العزيز اوزو بالله من الشیطان الرجيم. اسم الله الرحمن الرحیم اینا اعطیناک الكوتر فصل لربک من حر اینا شامیك هبل الابتر. صدق الله العلي عظيم السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر السلام عليك يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإنا لك عند الله شأنا من الشأن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق جمعين و نصلي و نسلم على حبيبه و سيدنا و حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى قيب طاهر اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن عبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكابم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الحادي وعلى الحسن بن علي الزكی العسكري وعلى الحجة القائم المهدي وججك على عبادك ومنایک في بلادك بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الى یوم القیامه عباد الله و نفسی بتقبل الله قال مولانا امیر المؤمنین استیكم عباد الله بتقبل الله والعمل بطاعته و اجتناب مأسیته. فإنه من يتعله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله فقد ضل ضلالا بندگان خدا خودم به شما را به تقبای الهی سفارش میکنم وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام, و السلام می فرماید بندگان خدا سفارش می‌کنم شما را به تقوای الهی و عمل به طاعت او و پرهیز از معصیت و گناه بعد ادامه می‌دهد هر کس مطیع خدا و رسول شد به فوز عظیم نائل می‌شود و اگر کسی توقیان کرد اسیان کرد به گمراهی مبتلا خواهد شد در خدبه دوم به بیان مناصبت و نکاتی چند اشاره روز نوزده آزرماه سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگیست که در سال 1363 فرمان تشکیل اون از سوی حضرت امام قدس الله نفسه و ذکیه صادر شد این شورا اگر بخواهیم یک تعریفی از اون داشته باشیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بالاترین عالیترین تأثیر نهاد در عرصه سیاستگذاری فرهنگی و حتی علمی کشور است که البته معتقدم از روز تاسیس تاکنون توسط این شورا تلاش‌های خوبی، کارهای ارزشمندی صورت گرفته است. اما آن انجام گرفته است همه انتظارات جامعه فرهنگی کشور ما نیست، هم انتظارات رهبری فراتر است و هم انتظارات فرهیختگان و نخبگان جامعه فراتر از آن هست واقعیت مطلب این است که فلسفه وجودی این شورا فهم، طبیین، تسبیت و ارتقاء فرهنگ انقلابی کشور ماست اما بین آنچه اتفاق افتاده و بین آنچه باید اتفاق می افتاد فاصله همچنان فرابان است. تولید علم، سبک زندگی اسلامی، آموزش و پژوهش، مهندسی فرهنگی و ساماندهی آنها از مسائل مهمی است که به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است. لذا لازم است. این شورا نسبت به مأموریت‌های های محوله بیش از گذشته سرمایه گذاری کند متاسفانه شورا قبل از این که متکی باشد بر تحول فرهنگی در کشور متاسر از فضای بیرونی است و فضای بیرونی تأثیر گذاره در برنامه شورای انقلاب فرهنگی است البته ما قادرشناسیم، ناسپاس نیستیم. اونچه میخواهیم در حقیقت مطالبات مقام معظم رهبری، انشالله میذاریم. از این به بعد در ارتقاء کمی و کیفی برنامهها، برنامه های استوارتری داشته باشیم. هفته ای که گذشت ما شاهد برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی بودیم. مهمانان بزرگواری از سراسر دنیا در این کنفرانس دعوت شده بودند هر ساله چون این اتفاق بزرگی در کشور ما رخ دهد موضوع وحدت و اتحاد بین مسلمانان از مسائل جدی است که متاسفانه امروز به خاطر خودباختگی بعضی از کشورهای اسلامی انچه ما در عمل میبینیم به جای وحدت تفرقه را مشاهده میکنیم سه چیز ضرورت وحدت را برای ما مشخص می کند. چرا وحدت یک دفاع از کیان اسلام در مقابل دنیای استکبار دو ضرورت تقویت عزت و کرامت امت اسلامی که در سایه وحدت امت اسلامی به دست میاد و سوم پیشرفت دنیای اسلام ما پیشرفت دنیای اسلام را میخواهیم عزت و کرامت و امت اسلامی را ما میخواهیم ما دفاع از کیان اسلام را میخواهیم و اینها اگر وحدت در جامعه اسلامی تحقق پیدا کند خاست دور از انتظاری نیست اما بیکفایتی ها و بستگی ها متاسفانه این حرکت پرشتاب را به چار کندی کرده است. دنیای اسلام برادران، خواهران دارای زرفیه تعظیم نیست. هم از نظر جغرافیایی، و هم از نظر جمعیت و نیروی انسانی یک میلیارد و نیم جمعیت جمعیت کمی نیست که امروز امت اسلامی از اون برخوردار است منابع سرشار خدادادی که در اختیار کشورهای اسلامی است دشمنان ظرفیت ما را و توانمندی ما را بیش از ما شناختند ولزا همیشه در صدد تفرقه و جدایی بین ما هستن تا از این سرمایه ها به نفع خودشون استفاده کنن امروز ما با صدای بلند و رسا اعلام میکنیم جمهوری اسلامی پرچمدار وحدت است. موزه ما همون گونه که رهبر عزیز و فرزانه انقلاب فرمودن موضعی سریع و روشن است ما مدافع کشورهای اسلامی هستیم کارنامه جمهوری اسلامی در دفاع از کشورهای اسلامی و کیان کشورهای اسلامی برای دوست و دشمن آشکار است. چه کسی با تمام وجود برای استقلال کشور مسلمان سوریه تلاش میکند چه کسی برای استقلال کشور عراق تلاش میکند چه کسی دل سوز وحدت کشورهای اسلامی است امروز رهبری عزیز و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای صل پرچم وحدت را بر افراشته داشته است من شاهد بودم موقعی که میهمانان بیداری اسلامی، محبان اهل بیت، کنفرانس اسلامی با رهبر عزیز انقلاب ملاقات میکردن با چه تعبیرات زیبایی از اقدامات رهبری یاد میکردند؟ ما باید از این فرصتهای تلایی استفاده کنیم دست داعش را از ترزمین های اسلامی با همت جبهه مقاومت ایران اسلامی کوتاه شد؟ و کردن البته دشمن هر روز توتعی را آغاز میکند توتعی که همین دو سه روز قبل اتفاق افتاد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که متاسفانه و باز بگویم متاسفانه به خاطر حمایت پشت پرده بعضی از سران کشورهای اسلامی و سازشی که با اسرائیل رژیم سهیونیستی داشتند و وعده هایی که به یک دیگر دادن به ترام جرعت داده شد که اعلام کند خود پایتخت رژیم سهیونیستی است و سفارت آمریکا باید به با اونجا منتقل شد ما هرچه آسیب میگیم از دست کسانی سابدهی موسانی هست خیانت خیانت دیگری بر پیکر اسلامی یک روز فلسطین اشغال می شود یک روز زنان و کودکان زیر رگبار گلوله ها جان می دهند امروز هم قبله اول مسلمانان بیت المقدس بنوان پایتخت قدس مرکز بیت المقدس بنوان پایتخت رژیم اشغالگر اعلام می شود راهکار چیست؟ راهکار این است که مسلمانان سکوت را بشکنند سفرهای آمریکا را در همه کشورهای اسلامی احزار کنند و توبیخ کنند اینها راهکار است تظاهرات عمومی در سراسر کشورهای اسلامی به راه به تعبیر بعضی از نویسندگان و سیاستمداران تعبیر جالبی داشت و اون تعبیر این بود که ترامپ آتشی روشن کرده است که در گام اول خود آمریکا و اسرائیل در اون آتش خواهند سوخت از همه عزیزانی که برای وحدت و امت اسلامی تلاش میکنند از برادر پرتلاش و خستگی ناپذیرمون که امروز هم قبل از خطبه ها فیز داشتند، داشتند حضرتهایت الله راکی صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم گامی استوار برای رسیدن به اون هدف بلند که رهبری فرمودند یک روز قطعاً فلسطین و بیت المقدس آزاد خواهد در رابطه با مسئله یمن یمن این روزها شنیدید که کشور امارات و عربستان یکی از همپیمانان انصارالله الله به نام علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن را به عنوان عامل فتنه خودشون در یمن انتخاب کردند با های فراوانی که به داده بودند بنا داشتن در صنعا پایتخت یمن شورش بزرگی براه پای انصار الله را خانه‌ستانا کنند و یک کودتا علیه انصار الله آغاز کنند عربستان به آنها وعده پول موقعیت اجتماعی داده بود امارات حمایت می کرد چند روز در سنعه شورش بپا کردن در یکی از مساجدی که محل برگزاری میلاد رسول گرامی اسلام بود تمام امکانات و تسلیحات و مواد منفجره جمع‌آوری کرده بودند تا در روز میلاد پیغمبر یورش ببرند و کار را یکسره کنن که با امدادهای الهی انصار الله متله شدن مقابل انجام شد و در ظرف مدت کوتاهی این فتنه سرکوب شد و علی عبدالله صالح عامل اصلی فتنه سعودیها و اماراتی ها و معاونینش کشته شدند انقلاب یمن خالصتر شد از این به بعد اون روزی که علی عبدالله صالح در کنار انصر الله قرار گرفت به خاطر بعضی از مصالح بود ولیکن امروز که این جرسوم فساد از بین رفت انقلاب یمن خالصتر شد و انشاءالله الله دواریم گامهای نهایی را تا پیروزی بردارند به فضل تروردگار عالم. اشاره داشته باشم به زلزله کرمونشا البته چند زلزله دیگر در کشور آمده که خوشبختانه آسیب جدی به وجود نیاورده الان فصل زمستان است فصل برف و باران است شرایط خوبی کسانی که دچار زلزله شدن ندارند من دیروز از سرپل و منطقه کرمانشاه متله شدم عزیزانمون از قوم که به اونجا رفتند امکاناتی را برای این زلزله زدگان فراهم کردند. یکی از عزیزان از اونجا میگفت ما بنا داریم با همت همه عزیزانمون چه صفا و چه نیروهای مردمی اونجا شهرکی بسازیم به نام شهرک معصومیه من تقاضا میکنم انشالله کمکهای نقدی تون را و همه امکاناتی که در اختیار دارید برای اونجا اختصاص بدید اجلاس نماز را در روز 23 آذر در قم داریم امسال عنوانی که برای اجلاس نماز انتخاب شده نماز و فضای مجازی است. فضای مجازی در این حال که عرصه‌های از اون تهدید است اما میتوان از این فضای مجازی به عنوان فرصت هم استفاده کرد میشود محتواهای مناسب در فضای مجازی تبلیغ کرد، تربیش کرد. امروز دانش آموزان ما، نسل جوان ما نیاز به آموزش‌های دینی دارند. و به خاطر ارتباط گسترده‌ای که نسل جوان ما با فضای مجازی دارند، ما هم از همین کانال و از همین ظرفیت و از همین امکانات باید استفاده کنیم و مسائل دینی را به اطلاع نسل جوانمان برسانیم انشاءالله ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقینا عذاب النار پرودگارا ما را بیاموز به بی اسلام و اسلامیان عزت انا بفرما به امام راحل روح و رزوان انا فرما به سکندار بزرگ کشتی انقلاب رهبر فرزانه انقلاب عزت سلامت طول عمر با برکت رحمت بفرما پروردگار به مراجع بزرگوار تقلیدمان عزت سلامت عنایت بفرما به خدمتگزاران نظام سلامت توفیق بیشتر عنایت بفرما به این مردم خوب ما عزیز ما و همیشه در صحنه ما عزت و حسن عاقبت مرحمت بفرما پروردگار را عزیزانی که توسط دشمنان مورد آزار قرار می تهدید قرار می به شخصیت بزرگ بحرین، حضرت آیت الله شیخ ایسا قاسم، پروردگار را بیشان شفای آجل کرامت پروردگار را باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان،